بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و اهله و اجمعین اما بعد دو تا آیه فقط یک اشاره کتای بهش میکنم بین من بحث نشان های قیامت دو تا آیه خیلی کوچیکی در قرآن هست که بنوان دو تا قاعده میتونیم ازش برداشتای بکنیم یکی فرموده خداوند افلله شک اف الله شک ست کلم هست اف الله شک آیا در خداون شکی هست روی کره زمین ما مسلمان خدا داریم میپرسیم اون بر تو با تو بودا داریم میپرسن ادهی گاب میپرسن ادهی مسیح و ایسا را میپرسن ادهی مزید را رو همه روی کره زمین ادعا دارن خدای هست مشرکین زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ادعا داشتن که خدا هست ولیکن این بودها شفاعتگر ما هستن شفاقون ما هستن واسطمون هستن بین ما و خدا هؤلاء شفعاؤنا شفیئمونن ما نعبودهم إلا ليقربون ایلالله ما را به خدا نزدیک بکنن خدا را قبول داشتن. تمامی مشرکین مسلمون و غیر مسلمان اتقال دارن مگر ادعی اندکی از کمونیستات شکی در خدا نیست اف الله شک کسی نبوده که حالا بگه در خدا من شکه حتی کمونیستا میگن طبیعت خالقه نمیگن خالقی نیست میگن طبیعت خودش خالقه واسه بوجودآورنده ای داشته باشه نمیشه انسان خودشو خودش به وجود بیاره انسانی که اراده داره ما ها میتونیم خدا باشیم نمیتونیم خدا باشیم چطور میتونیم خدا باشیم در صورتی که قبل از وجودمون اراده ای نداشتم خب باید کسی اراده داشته باشه که یه چیزی رو بسازه ما نمیتونیون خدا باشیم. الله شک. نه اصلا ممکن نیست. آفرینش بدون خدا باشه. آیا طلاع. میشه این خدا دوتا باشه. ایله مع, مع الله. که تکرار شد در نمازم شب. با خدا آیا همراه خدا خدای دیگر. ایله مع الله. بازم کلمه بیشتر نیست. خدای دیگر همراه این خدا هست. خدان آخرش گفت. قلحه تو برهانکم دلیل بیارید خود. باید یک پیامبری بیا در طرف اون خدا ما در طول تاریخ که بنی اسرائیل که موسا برایشون اومده چه قوم ابراهیم چه قوم لود تمامی اقوامی که بودن پیانبری برای خودشون داشتن حتی بودایی ها حتی گاپ هم ادعا بودا پیامبری از طرف خدا بوده خب اون کسی که ادعا داره خدای غیر از آفریننده یکتا تا هست و احتمال میده باید دلیلی داشته باشه یا پیانبری بیاره بگه غیر از این خدا خدای دیگری هست یا بیاد آفرینش رو به ما نشون بده تو برها برهانکو خداوند قبل از این که از بندگانش مدرکی برای خداوند دیگر بخواد مثالهای متعددی دیده گفت آسمانها رو ببینید گفت زمین, زمین رو ببینید گفت نگاه بکنید اما من یجیب المضطر اذا دعا نگاه بکنی تو در سختی میوفتی میخواد توی کشتی غرق بشه نگاه بکنید جز خدا کسی دیگه رو صدا میزنه خود به خود طبیعت انسانه انسان نمیتونه بدون خدا زندگی بکنه ای اللهم الله آیا همراه این خدایی که ما او رو صدا میزنیم در سختی ها غیر از اون خدای سختی ها خدای مشکلات خداوند علام الغیوب که از آینده با خبره آیا جزء اون خدا خدای دیگر هست چی میخواد بگه وقتی که گفت علام الغیوب بشاره کرد به خودش که من از غیب میدونم به مرده داره اشاره میکنه به بود داره اشاره میکنه شمایی که اونها رو واسطه قرار میدید میگن میدونن از آینده تون چرا ازشون می‌خایید چرا نیازتون طلبتون درخواستتون میرید از اون میخواهید چرا وقتی که مریض میشید، جادو میشید یا چشمی می‌خورد یا هر چیزی که هست هی hey, میری این ملا و پیش اون ملا که با جن و نمیدونم با فلان رابطه هست. چرا خودت دست بر نمیداری از خدا بخواهی قوتو رقیه بکنی خودتو خود درمان بکنی با کلام خدا. میری دست, دست به گریبان این و اون میشی. خدابند یکتا هست. خدا بند یک یکتا در شنیدنش در دیدنش. لیسه که مثل ایشهی و هو سمیع البصیر. هیچ کسی مثل خدا نیست خدا میبیند میشنود. در یک آن همه مخلوقاتش رو میبیند همه را میشنود چه نیازی هست انسان کسی را صدا بزند که گاهی باش باشه و نباشه شنیدنش مطلق نیست دیدنش مطلق نیست ابراهیم علیه السلام وقتی که باز ستاره پرستان و خورشید پرستان و نمیدونم ماه پرستان منازل کرد چی گفت روز که میشود میگفت خرشیدی که من دیشب میپرسیدم کجا را من الان بهش نیاز دارم چه خداییه که من باید برم فرسخها برم کنار اون بود برم کنارش اونجا باشه با من ولی اینجا الان بهش نیاز دارم با من نباشه توی اون کشتی که اون خدایانتون با نیستن چرا فقط خدابندیتا و علام و غیوب و سمیع و را صدا میزنید به خودتون بر بگردید و ما هم باید به خودمون بر بگردید نیازمندیمون احتیاجمون احتیاجمون به این نماز به این طاعت، به این علمی که داریم میخونیم این علم شریفی که به من شرف وحدانیت و توحید رو داد این کرامت را به داد که ما گاغ فرس و مرده فرس نباشیم شکر سپاس خدا الحمدلله رب العالمین ستایش و سپاس برای خداوند عالمیان خداوندی که همه مخلوقات را آفریده است این منت رو بر سر ما گذاشت قدر علممون قدر این نمازمون رو بدونیم این, این نماز نجاتمون هست اما بحث نشانه های قیامت که گفتیم همیشه هم تکرار کردیم از علم غیب خداوند که گذاشته از آن چیزهایی که رو خواهند داد تک تک این مسائلی که ما میخونیم بیش از 20 مورد یاد کردیم تمامی اون موردها نبودن دارن میشوند یکی از مطالبی که جلسه گذشته احادیثش نخوندی رو نخوندیم بحث ربا بود رباخاری زیاد میشه نبود رباخاری بر بگردین به 50 سال قبل کجا بود این بانک های ربوی شاید یکی دوتا شاید بود بود یکی دو نفر تعامل با ربا داشته باشن ولی الان دیگه همگانی شده کسی نیست که به این معصیت الهی آلوده نباشه به این خشم الهی آلوده نباشه احادیث رو بخونیم تک تک احادیث بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمرة. يكذبنا شون هوا يقيمده وينجرس. خصوصاً زنا مشروب خوري والربا ياد ميكنه. همه اين هار مدری میبینیم. خداوند بشدت ياد میكنه از ربا خوري. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي مؤمنين نهست ربا بکشید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دست اگر بر ندارید منتظر جنگ با خداوند باشید جنگ با خداوند درو باخاری رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایان ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله فبدونی اسباب عقوبات صد نکونید ربا مالتون رو زیاد میکنه ربا مالتون رو کم میکنه در همین دنیا می‌بینید ببینید اونهایی که رباخاری میکنن همه از هاشون موندن همهشون از پاس کردن چکاشون موندن عاقبتشون رو نگاه بکنید ولیکن باز انسان درس نمیگیره و برایش راحت حرام قری برایش راحت معصیت الله جل شعن و عزیم عظیم با این همه مخلوقات با این همه منت ولی باز انسان برایش عصیان و سرفیشه از دستور اون پروردگار تو تا برایش انسان راحت شده رسول الله صلی الله علیه و می فرمایند الربا خلتون ووسبرون باب اکثر وها مثل مثل ان یمکی الرجل امه. عه. افقااد و سه تا در داره ربا کمترین را اینه كه انسان با مادرش ازدواج بکنه همبستری بکنه جمعع بکنه این کمترینه کی از ما راضی میشه با مادرش هم بکنه. همين حدثك يمكن أن يكون صحيحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حدث ربنا تأسيه يكون در مصادرك حوكم حدث قابلي بن مجر ويأت مكونا بضم صحيحة حدث ابن مسعود حدث عبد الله بن حمد لدريم رضي الله عنه ومكسي كم فرشتغان أورا رسول الله ناعم يقول لك رسول الله فارمودا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية يك درهم از ربا انسان میخوره بدتر از 36 بار جنا کردن بحث شناعت این فعله ASCII این فعله بدی این فعله بحث معصیت الله که انسان راحت عصیان خدا بکنه سرپیچی خدا بکنه همه هم, هم میدونن فلانی ربا میگیره فلانی پولش رو تو بانک گذاشته سود پولش رو میخوره فلانی قرض نمیده مگر اینکه در مقابلش سود میخواد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه من شبی در خواب دیدم شخصی در رودخانه‌ای شخصی کنار رودخانه شخصی توی رود یک شخصی از پشت رودخانه میخواست اون شخص از رودخانه بیرون بیاد هی با سنگ ورا در دوباره در آب میفتاد بعد میگه رسول الله صادق سوال کردم چرا این شخص نمی‌تونه از آب نجات پیدا بکنه بعد اونجا اون ملکه بهش میگه میگه این شخص <متحدث> ربا خاريني كال إن شخص ربا خاريني هل... الذي رأيته في النهر آكل الربا ربا خاريني كال أعزو الله حدث حدث دار بخاريه حدث كخون دام حدث سامر بن جندون أما حديث جوابر رضي الله عنه بفرميان لعن رسول الله صلى <سلم> الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سوا رسول الله نفرين كاله لعن كاله ملعون ان کسی که ربا بخوره ملعون ان که شاهد رباخوری باشه ملعون آنکه این معامله ربوی را رب بنویسه ملعون ان کسی که این معامله را بنویسه و شاهدش باشه و آن کسی که از مال ربا بخوره میدونه اون تاجر فلانی مالش ربا هست میره سر صفرهش میشینه از مالش میخوره حرام سر سفره رباخار بشینه از مال رباش بخوره لعن الله آكل ربا اولیش اون کسی که خودش رباخاری میکنه و موکله اون کسی که میاد از اون مال ربا بر میداره و میخوره و کاتبه و شاهده اون کسی که مینی میسه و و شاهده بر اون هست این حدیث از صحیح مسلمه باب لعنه کسی که ربا خاری میکنه، بله، از نشانهای قیامت، اینه که انسان نگاه نکنه مالش حرام یا مالش حرام حلال، لیأتیا لیأتیا نه علی الناس زمان لا یبال مر، بما اخذ المال، آمین حلال، آمین حرام، روزی میاد که مردم نگانه میکنن مالی که میخورن حلال یا حرامه، آگاه باشیم، دین ما رو نفروشیم، خدا ما رو نفروشیم. اسلام رو نفروشین بخاطر دنیا از نشانهای قیامت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم میفرمین یمسی رجل و مؤمنه و یصبح و کافره مسلمان روز کافره روز مؤمن و شب کافره یبیع دینه و بعرض من الدنیا قلیل دینشو بخاطر اندک دنیایی بخاطر مال دنیایی بخاطر یک لقمنانی میفروشد کسی از برستگی نمرده و ما هم نخواهی مرد رزق و خدا میرسونه، فکر نکنیم با مال، با روا، مالمون زیاد میشه، مالمون کم میشه، خشم خدا بر کسی هست که از روا میخوره و به جنگ به خدا اومده، برحضر باشیم و بدونیم، دقت بکنیم، از مالی که به دست میاریم فردا وارد بازار میشیم، فردا خدا شاید ثروتی مالی بهمون بده، فردا شاید خداوند امتحانمون بکنه، در نیازی احتیاجی بیفتیم، برحزار بوشيم سبحانك و وبحمدك صلى الله على محمد وعلى آل محمد